بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أفتادوا يكمين بيت أز أبيات طائية البيري رحمه الله واسكنه فسيح جناته ميقويا وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهت وناداك الكتاب أولاً بعد أشريك يميشي كاداز إن مسرع اینکه که منظورش مقصودش از کتاب قرآن واشه این قرآن برای تو حشداری هست انذاری هست و نادا کل کتابو فلم تو ولی تو اجابت نکردی الله جل و علا برای ارشاد کتاب ها را فرستاد اتمام حجت کرد تورات انجیل و قرآن اینجا دوست مسلمانش داره هشدارش میده داره تذکرش میده یادواریش میکنه میگه و نادا کل کتابو الله تو را مورد خطاب خودش در قران قرار داد ولی کن تو اجابت نکری فلم تجبه ونبهك المشيب فمنتبهت پیرم شدی سنی ام ازت رفته رسول الله صلی الله علیه و سلام می فرمایان اعذر الله رجل من امتی بلغ ال 60 انیت ماموس شده حجت شده کسی که سنش از امت من رسول الله صلی الله می فرمایان که به 60 سال برسه لعزر نادر الناس الله جل وعلا أعذر الله رجل من أمتي سن نازد رفته تدقى عزر نادر بشي الله جل وعلا بدار قاهل هاي عزر نادر بس تهم موعزشه بكتاب الله وهم سن نازد گذشته ولكن باي موجود تب داره شيار نشدي فمن تبهته كيمي خيب دار بشي ويقبح بالفتا فعل التصابي أو لا يقبح بالفتا فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفت قبيح الزشته برای یک جوان فعل بچگونه رفتار بچگونه و عقبح من زشت تر از اون شیخون قد تفتا با از اون پیرمردی هست که ادا و رفتار جوان ها را انجام میده چششرانی میکنه سرش تو گوشی جلو تلویزیون نشسته موسیقی گوش میده این دیگه خیلی بدتر از اون جوانی که رفتارش بچگونه است قبیح زشته داره نصیحتش میکنه سنی از رفته قدیمه، سلف، سنشون به چل میرسید مصد و ول نمی کرده ولی که این الان همون درد و مرضی که در اسپانیا و اندولوس بود همون درد امالان هم امت ما بهشت و شدن از بس که فتنه ها زیاده اون پیر ما هم مفتون شده نشسته تلویزیونو رو باز کرده از این کانال برهنه به کانال دیگه فتنه هم راحت شده. دیگه بعضی‌هاشون پیشرفت کردن، این استعلام هم دارم تو موبایلشون. به بهانه اخبار چیش کردنی میکنه. کبیح ها کبیح نیست، زش زش نیست. و آنتا حق بال تفنید منی ولو كنت اللبيب ولو سكت المسي ولا ما نطقتها ولو كنت اللبيب ولا ما نطقتها هر دو تا از. و بعد از اونا بین بعض از نسخات متفاوته نسخیمان و نفس که ذم لا تدمسيها لعيبن فهی اجدار من ذممتها. حالا پیشش ما این بیت افطار الان طبق نسخه شما بریم بیت هفته و انت حق به تفنید منی تو داری من رو تخته میکنی نصیحت میکنی ولیکن تو مستحقتری به اون نصیحت و نقد و انت احق به تفنید به نقد کردن و تفنید کردن این دلیل و براهینی که برای خودت چی دی برای نقد من برای عزبین بردنش برای جواب دادنش انت حق تو الاتری من که همه من رو میشناسم من اینم و گفتمم از خ ولكن تو ان چیزهایی که به من نسبت دادی تو بهش اولاتری ولو كنت اللبيب لما نطقتها اگر هوشیار بودی زیرک بودی دانا بودی این چیزها رو به زبان نمی آوردی و یا اون مثل یکی پیش شمع است ولو سكت الموسئ لم نطقته ولو سكت الموسئ اگر اون خطا کار حرف نمی زد تو حرف نمی زدین معمولا خطاکاران به خطاشون دل جاعتتشون خیلی بیشتره حالا میاد میادینشله در زونه ابات به ششاره خواهیم کرد بحث ذلی خطا کرده یوسوف حبس کرده تقاضای زنا کرده بعد نقد که میشه بهشتم بر میخوره که چرا نقدم کردن وقل قال فیلم دیین اتراع ات عزیید تو را به دوفته ان نفسه هستقد شقف با بهش بر میخوره باک مال میاد از اون بیارویی خودش دفاع میکنه عابوز خقلبیری میگه تو که مرا نقد که تو کارنامه خودت خودتو نگاه کن در زندگی چه کار کردی چه کار نکردی بعد بیا به من بگو کارنامه ی تو چیه چی داری برای پاسفقی الله جل و علی و نفس کذوم خود رو ملامت کن سرزنش کن به مزمت یاد کن نه کسی غیر از خودت را نه دیگران را لحیبین با عیب عیبجوی فهی اجدر و من دممت نفس خودت مستحق داره از اینکه که مزمتش انتقاد ازش اش بكوني تا ولو بكيت دمع عيناك خوفا لذنبك لم اقول لك قد امنت الان اینجا نصيحتش متوجه ابو بكر خطا ولا هلا هر چن كه شما يكام جلوتر برید يكام تعريف ازش هم ميكنه اي ابو بكر مقصود ما ها هستيم يا ابو بكر خاصيه الله اعلم چون نصيحتها متفاوت جاي جوارو نصيحت ميكنه مثل اين بيت ويقبح بالفتى فعل التصابي جای رو نصیحت میکنه و جای شخص خطا کار و جای شخص بی خطا الان میاد در زم نبیات به اشاره خواهد شد پنجمین بیت ولو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لم اقول لك قد امنت ولو بكت دیما عيناك اگر چشات خون بگرین ترس از الله جل و علا خوفا از باب ترس از گناهت به درگاه الهی لم اقول نگ... نمیگویم بهت لقد امنت تو در امانی از سخط و خشم الهی چون اون کسی در امان از مکر الهی که نفاق تو قلبش هست افا امینو مکر الله فلا یأمنو مکر الله الا القوم الخاسرون زیانکاران و تبهکاران خودشون در امان از فتنه الهی میبینن ای برادر خودتو در امان از فتنه ها و از این دنیا در امان نبی نشمور در مقابل اون گناهانی که انجام دادی خود رو در امان از عذاب الهی و عقوبت بر اون گناه ها نشمر نبین نپندار بر این که چون توبه کردی الله معاقضت نمی کنه بترس بر اون گناه که شاید اون توبه خالصانه به درگاه الهی نبوده مؤمن خودشو در امان نمیبینه از خشم و غذب الهی خاسرین و زیانکاران و تبهکاران که خودشون در امان از خشم الهی می بینن اف امینو مکر الله فلا یأمنو مکر الله الا القوم الخاسرون فلا یأمنو کسی خودش رو در امان نمیبینه از عذاب و قبط الهی مگر زیانکاران. و من لکه بالامانی و انت عبدون امرت فمعتمرت ولا اطعت. و من لکه بالامان که به تو تزمیم بده امنیت رو که در امان باشی از خشم الهی و انت عبدون تا هم بنده یه امرت امر شدی فمعتمرت و به امر دستور الهی پایبند نبودی. اجراش نکردی انجامش ندادی اون امر الهی را کوتاهی کردی ولا اطاعته. اطاعت نکردی از فرامین الهی چطور خودتو در امام میبینی در مقابل اون معصیت و گناهت و در مقابل اون گناهان معاصی که انجام دادی و در اون کوتاهی که در مقابل طاعت و عبادت داشتی چطور خودتو در اما میشموری و من لك بالامل از کجا میاری این امنیت کی تو رو در امان خودش نگه میداره که بد امنیت میده اگر الله بد امنیت نده کی هست که تو را پناه بده الله اگر تو را پناه نده خسن روز قیامت کسی را نخواهی داشت کی بعد سنگ تو به سینه بزن هیچ کس نیست که دادت برسه فریاد رسدت باشه ثقلت من الذنوب ولا ستخشى لجهلك انت خف اذا وزنت ثقلت من الذنوب سنگین شده اون ترازو اون کفه گناهانت ثقلت من الذنوب سنگین شدی با اون همه گناه ولا و وترسی من الله نداری لجهلك جهلت جهل جهل سبب میشه انسان ترسه الله نداشته باشه ولی که علم انما یخشى الله من عباده العلماء سوى ترس از الله میشه جهل سبب میشه که انسان از الله نترسه بترس از اینکه سن شما بالا بره روز برسی که شما این شخص بشی از الله نترسی جهل اگر دنبال علم ناشی جاهل میشی و اگر جاهل شده چی میشی از الله میترسی یا نمیترسی نمیترسی بتاس بازم توصیه به علم در فقلت من الذنوب ولا تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت فقمي كونك أغار روز قيامت بشه كفى يقنهان سبوك بشه شون روز قيامت روز حساب كتابه روز فازنه فمن ثقلت موازينه فأولاك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولاك هم الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه و نفسك ما رحمتا و تشفقو للمصر من گناهکار خطاکار کی میگه ابو ساق البری من خطاکار و تشفقو للمصر من که مصر بر گناهم خطاکارهم بر من شفقت داری نصیحتم کردی الله جزئی خیرت بده دنبال سلاح منی دنبال نجات منی شفقت داری بر من داری مهربانی میکنی در حقا تشفقو للمصر عل المعاصی برون کسی که منظور که خودش باشه توی که من رو نصیحت میکنی اسباب شفقت دارین مرا نصیحت میکنن که دست از گناه بکشن و ترحمه رحما وترحما نسبت به من داری نفس کما رحمته ولی به خود رحنا دوري. رحمي بحول خودت رحم نداری حال خودت نمیکنی خودت اولاتری به رجعت القهقرة و خبط لعمرك لو وصلت لما رجعت رجعت القهقرة قهقرا بازگشت و برگشت به عقب بار داری میگردی بر میگردی خبت اشوا رفتنه بدون اینکه انسان ببینه خبت اشوا هست این اونور میری، داری اونور اونور میری یا تخبت، بیراهه میره از این به اونور چون نمیبینه، تشخیص نداره لعم از باب تأکید که هم گفتیم تو این خردمن، تو ای عاقل. فالله این عاقل، الله این جان تن بهت داده لو وصلت لما رجعته تو اگر واقعا به منزلت جایگه رسیده بودی، در بندگی و طاعت و عبادت لما رجعت. اگر آدم خوبی واقعا به اون درجه والای خوبی رسیده بودی اینچینین باز نمیگشتی. جهل سبب میشه انسان اگر عبادت هم داشته باشه دچار فتور بشه بر بگرده ولی علم پیشگیری میکنه از این بازگشت به عقب علم تو رو جلوتر میبره ولی به عقب بر نمیگردونه. ای دوست ای رفیق جهل تو را به اینجا کشونده که داره اینچینین پس میگردی میگردی. این پس طرف نشانه این که تو جاهلی اگر عالم بودی و به جای رسیده بودی این چنین باز نمیگشتی این چنین همه گناه و معصیت انجام نمی دادی ولا وفیت ربک دون ذنب ونوقشت الحساب اذا هلكت بدون میگیش ولا وفیت ربک دون ذنب اگرم به پیش پروردگار بری برسی در روز محشر جلو الله جل و علا بدون گناه ولی کن حساب بشي الله حسابت بكون محاسبت بكون بخاطر کوتاهي تقصيره والى اخره اخلاصك غناي مرتكب نشدي ولكن الله يك تقصيري استو ديده باشه بخاطر تو را محاسبه بكوني مين دني تي ميشه ونوقشت الحساب اذا هلا تبدك محاسبه بشي هلاك ميشي چون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم من منوقش الحساب هلك كسيك محاسبه بشي هلاك ميشه الله بخاطر به پای محاسب میز محاکمش بکشونه که حساب کتابش بکنه حلق میشه با در همین اینجا از اون حدیث میگیره که حدیث صحیحه میگه وان وقشت الحساب اذا هلكت بدون اگر گناهی هم نداشته باشی جلوه الله بی سی و محاسبت بکنه بدون که هلاك میشی ولم یظلمک في عمل ولكن عسير ان تقوم بما حملت ولم یظلمک في عمل ولم یظلمک ولم یظلمک ربک في عمل در مقابل عملی که استخاصه بود الله بهت ظلم نکرده بود تکلیف الله جل و علا بر تو مالایطاق نبود طاقتشو داشتی میتونستی میتونستی نماز بخونی میتونستی روزه بگیری میتونستی ازدواج بکنی و الی آخر میتونستی طلب عبر رو بکنی ولی خودت نکردی خودت دنبال علم ن부دی ولم لم یظلمک فی عمل در هیچ عملی که استخاصه بود بهت ظلم نکرده بود از تو فوق بود و لیکن عیب کجا بود و تقوم بما حملت عسیر بود، سخت بود بر تو سخت شمردی و پنداشتی بر خودت که بیای این مسئولیت سخت را متحمل بشی مسئولیت خوصا علم شرعی و طاعت و عبادت الهی و عمومش الله جل و بر برخلاف تصور فصاق و فجار و بیدینان و لادینان شر بندگانش نمیخواد برخلاف تصور اونها فسق و فجور انسان را نسبت به مقدرات بدبی میکنه انسان را ناراض میکنه الله جل وعلا دار قران ميجي ولا يظلم ربك احدا الله يظلمك نه ولا يظلم ربك فهمت الرسول صلى الله عليه وسلم فهمان هذا الحديث القدسي كذا الله الناقل مكون ميجي يا عبادي الله ميجي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم حرمت الظلم على نفسي باخذهم ظلم حرم كذا بعد اخر حديث بيجياد الله جل وعلا جناج الرسول صلى الله عليه وسلم ناقل مكون ميجي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه خير دي دي شكرا لله رب اجاب يارب وگر مصيبتي غير ازن خير و دي دي كسي راز جسد سرزنش نكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اگر بدي مصيبتي است سر خود انسانه الله شرخوا بدخوا انسان نيست اگر برادران يوسف ديدشون نگاهشون به الله خير بود نمي اومدن برادر بي گناه را تو چاه بندازن شما اینجا نشستید تصور بکنید یک بچه ده ساله یک برادر ده ساله داشته باشید آیا به خاطر اینکه پدرتون اون برادرتون رو بیشتر دوست داره و یا محبتش رو داره یا اهمیتی بیشتری بهش میده شما میرید برادر ده سالتون تو چه میندازید؟ هرگز قابل تصور نیست الان برای شما قابل تصور نیست چون در اون حال برادران یوسف واقع نشدید اونا فرزند شیطان از دری بر اونها وارد شد اغواشون کرد فریبشون داد دونس از چه دری وارد بشه دوچار کم بود محبت شده بودن کم مهری و کم لطفی دیده بودن به قول خودشون دای خودشون اومدن جبران بکنن با نبود یوسف یوسف اگر نباشه ما اون محبته رو خواهیم داشت یخلو لکم وجه و ابی کن اقتلو یوسف و اطرحوه و ارضا بکشید یا اگر تو چاه یه جایش بندازید بشه. صص کم بوده محبت پدری داشته شیطان از این وارد شد. برای ما از درهای دیگه وارد میشه. این تقدیر را بر خودشون تلق دیدن. چرا باید یوسف باشه که پدر بهش بیشتر هم میاد بده؟ محبت ها فقط مال یوسف باشه؟ ما هم محبت میخوایم میگه گناه یوسف بود که یعقوب علیه الصلاه و السلام بیشتر او را دوست داشت؟ گناهکار بود میگه؟ میگه تقصیر از یوسف بود. پدر او را بیشتر دوست داره. عدم رضایت به این تقدیر، چرا ای را باد بیشتر دوست داشته باشه؟ اومدن این سرنوشته را تغییر بدن خوبش بکنن بهترش کردن اومدن به دروغ تو چهاش انداختن پیش پدر اومدن گریه کردن و جا و ابا هم عشان یبکون با گریه اومدن پدرم عشق تمسوح که از اونها میبینه و صداشون میبینه و پیراهن یوسفی که پاره نشده و خون روش ریخته شده نگاه اونها میکنه بعد بهشون میگه بل لکم کار خودتونه. پیراهن سالم پیش من رو بعد میگه گرگش خورده. این گورگه دیگه چقدر مهربان بوده اومدن به پدر نزدیک بشن بدتر حقیر شدن مبارزه با تقدیرات اینه زن حب رو سرش میاد می جنگه با شوهر که چرا زن رو سرش رو ورده آخر خودش گوشه میشینه شوهر حجرش میکنه یا طلاقش میده بعد داد و بیداد میکنه شوهر زلم کرده فلان کرده نمیگم مردا ظلم نمیکنن که مبارزه با تقدیر و شر بلای جون خود اون شخص میشه مبارزه با تقدیر و بشارع اینها اگر برادر تنیشون بود این بی رحم نبودن در مقابلش چون یوسف از زن دومه اون عاطفه ای که ده تا برادر از زن اول با هم دیگه داشتن با این نداشتن اومدن تو چاه انداختن مخالفت با شرع الهی عدم رضایت در مقابل شرع الهی که چرا این بچه زن دومه محبوبتر بشه این بیرحمیه این اینطوری به تسلسل پیش اومد الله ظلم نمی کنه بنده میکنه زمانی که شر رازیر پا میذاره و زمانی که چی نسبت به مقدرات ناراض میشه خودش بلا بر سر خودش میاره کسی را جز خودت ملامت نکن هر بلایی سرت اومد هر بلایی سرت اومد خودت مقصری الله زل نمی کنه وما ربک بظلام للعبید ولا یظلم ربک احد الله هرگز ظلم نمی کنه الله سونی میخواد الله خیر خواهتونه سختی بر شما نمیخواد ولا يريد بكم العسر الله جل علا مهربانه رحمانه رحيم والله لطيف بعباده الله لطيف بمن دغانش ولي شر خاهي از ما سر میزنه ولم يظلمك في عمل الله هیچ هیچ و هرگز در عملی که استو خاصه بود به ظلم نکرده ولکن عسير ان تقوم بما حملت توبرتو سخته رضایت در مقابل اون شریعه در اون مقابل احکام الهی الیس الله باحکم الحاکمین مگر الله به تری حکم نمیکنه بس چرا زنبیتابی میکنه زمانی که حب روسرش میاد اگر الله احکام الحاکمینه، اگر شرع الله، دین الله بهترين حكمه، چرا زن تسليم نمیشه در مقابل حکم که حکم الله فنکحو ما طاب لكم من النساء مثنه و ورباع و ربع؟ چرا؟ چون راضی نیست به حکم چون هوای نفس وسابس حسابس شیطانی بردل او چیره هست، چرا بردل او شیطان چیره شده؟ لأن ذكر ياد الله غافل ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين إذا كان ذلك خوهر لذلك داد و بيداد و فرياد ميكون سوريا البقرة بخونه والله يقولون أن الشيطان در دلش بپا کرده والله آرام ميگره فإن أخذها بركة و تركها حسرة ومن قرأ البقرة لا يستطيع البطلة إذا قبيترين جادوگران با ان جنيانشو نتونان چیره بشن بر قلب کسی که بقره میخونه از باب اولا اون شیاطین دیگری که دوره بر ما هستن توانایی اینو ندارن که بر دل اون خواهرمون تأثیر بذارن نمیتونن ولی اون خواهر زعیفه و زعفش هم فقط یه چیزیه غفلت از یاد الله و جهلش نسبت به احکام الله بیا بهش بگو به اون خواهر بگو الله در قرآن گفته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون قسم الله ايمان نادرن فلا وربك قسم باربردهار محمد ايمان نادرن حتى يحكموك فيما شجر بينهم تنق تحاكم بشيء يعني شرع الدين تحاكم بشيء بيننا دار أم شاجره وندعوى ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت سبس حرج نبينا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 يا يقه پدار گرفته يا برادر گرفته يا دم دادگاه داره پله ها را داره ميشوره جهله جهله شرعي ولو قد جئت يوم الحشر فردا وابصرت المنازل فيه شتا بيد داشته باش روز محشر زماني كه خودت به تنهایی مياي تنها يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه تاكتنه نه برادر نه همسر نه فرزند نه پدر نه مادر تک تنها نه که تنها فرار میکنه نمیخواد همسر رو ببینه شاید اون همسر حقی داشته باشه رو بگیره از پدر فراریه از مادر فراریه از برادر فراریه از همسر فراریه از فرزند فراریه روز قیامت اون از محشر اینه میگه هی برادر، بیاد باش، ای برادر داشته باشه ای خواهر اون روزی که در محشر اینچینین تک اومدی و و, لخت و, و فراری از همه وبسرط المنازل فيه شتى وبعد اون جهما دي تو خودت پر از گناه و خطا بعد اون جایگاه های متفاوت رو میبینی مؤمنين رو میبینی که صف کشیدن جلوب حوز رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بر منبر روی حوزی صده و به مؤمنین متقیم بفرماید ورد این حوز بشید حوزی که از نافدانهایی که از بهش از کوثر بهش ان عطینا کل کوثر از اون کوثر بهشتی از از بهش ترازیر میشه از اون آب گوارای بهشتی و در اون چشمه رسول الله صلی اللہ وسلم در اون حوزه در صحنه محشر که کسی اگر بیاشامه هیچ وقتش نمیشه و زیر رحمت الهی در امان از فتنه های محشر پنجاه هزار سال ولیکن تو رانده میشی از جلو حوزه پیغمبرت میخوای چه کار بکنی به خاطر اینکه سنت پیغمبر را نپذیرفتی اونجا هست که فرشتگانی که سربازان الهی را ترد میکنن و پرتت میکنن از جلو حوز که وارد حوز مصطفی صلی الله علیه وسلم آله نمی نشی نزدیکم نشی زودوده میشن پرت میشن اشخاصی از جلو حوز رسول الله صلی الله علیه و آله تبع وسط فرشتگان کلی لیاقت ورود به حوز مصطفی صلی الله عليه وسلم را ندارن چون تابع مصطفی صلی الله علیه وسلم نبودن چطور وارد حوزش بشن حوزش برای پیروانشه رهروانشه اونهایی که راهم مسلکشون رسول الله صلی الله عليه و بوده به تعداد ستارگان آسمان کاسه ها گذاشته در لبه های اون رودخانه رودخانهی که کنارهاش مرواریده دره درخشانه خاکش مسک خوشبو و خوشعتره آبش گوارا و صاف و پاکه و زلاله برای کیه؟ برای مؤمنینی که از سنت نوشیدن از علم نوشیدن ولی اون جاهل محروم از اون آب گوارا چون دنبال حدیث مصطفی صلی الله علیه و وسلم نبوده محروم ترد میشه کنار زده میشه لیاقت این حوز را نداری چون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نشنیدی ارزش ندادی به این پیغمبر چطور لیاقت ورود به حوزه شو داشته باشی اینو میگه مد نظر داشته باش اونجا حسرت می‌خوری اونجا روز ایمانی است ببيني همه قد غرفتن دارن وارد و تو لا عظمت الندامة فيه لهفه على ما في حياتك قد اضعت انجا در ان روز بشي خیلی سخت و سنگين خواهد بود لا عظمت الندامة فيه بس بشي بشيمان مشي باندهگين لحفة حسرت قای خورد باندهگيني ان تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله ان تقول نفس يا حسرتا ونجوه ميه حسرات ميخوري بر اون كوتاهي كه داشتي به درگاه الهي في جنب الله ان تكون نفس يا حسرتا على ما فردت كوتاهي كه داشتم روز روز پيشيمانيه در مقابل تفريط كوتاهيت اونجا پيشيمان ميشي و اينجا الله جل وعلا اون سخنان كساني كه حسرت ميخورن اينجا داره ياد مي‌كنه اي برادر اين آووز گوشت بگو تفر من الهجيري وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت تفر من الهجير هجير گرمای سخت خورشید هجير وتتقيه از گرمای سخت تابستون خصوصا از خورشید فرار میکنی نمیخوای زیر خورشید بییسی در گرمای غرب تویی که اون گرما رو بر خودت نمیپسندی برات سخت زیر گرمای سادن در تابستون فهلا من جهنم قد فرارت ای کاش که از جهنم فرار میکردی ای کاش که از جهنم میترسیدی ای کاش که میدونستی که جهنم عذابش خیلی سختتر و دردناکتر از این آتش و آتشباد این آتش باد ازش پرهیز داشته باشی اونم آتش جهنم یا ایوها الناس قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودوها الناس و الحجارا علیها ملائکتون شداد لا يعصون الله ما مروا ويفعلون ما يؤمرون خوف انفسكم واهليكم نارا برحذر باش خوتون واهلتو برحذر باش مريت از جهنمي كي سوختش كيان مردوم و سنگها انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره غير از ان فرشتغاني كي مسخر شودن برعي عذاب وشكنجه جهنميان عليها ملائکتون غلابون شداد سختن اون ملائکهی که الله گذاشته برای شکنجه جهنمیان بیاد داشته باش اینو باید ازش حذر داشته باشی اینو بعد مد نظر داشته باشی ولست تطیق احوانها عذابا ولو كنت الحدید بها لذبتا ولست تطیق كم ترين عذاب جهنم را تطاقتش نداري كفه بات تو جهنم باشه مغزة وجوش بياد تحملش نداري عزاب عذاب جهنم را بدون عذاب جهنم سخته ولو كنت الحديد بها اگر تهم اوهنم باشي تو جهنم لذوبتا تو ذوب ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت ولا تنكر فإن الأمر جد ولا تنكر انكار نكون فكرة شوخية فإن الأمر جد حساب كتاب حق وليس كما حسبت ناوان چيزي كتفق مي ولا ظننت ولا ينكو قمان ميبري باري واسون نيس حساب كتاب سخت خوت رو محاسبكم اي برادر خوت رو روز جلو الله جل وعلا بيستي قال رحمه الله أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترته أبا بكر كشفت أقل عيبي يعني ان چيزي كدر مورد من قفتي كامترينشوت وأكثره و معظمه سترت و اکثره و معظمه خیلی از اون گناه و بزرگتر از اونها خیلی گناه و بزرگتر از اونها سترت سترش کردی نفهمیدی یا بر تو ست شده نشرش نکردی نگفتی به این توازعه اون چیزی که منو سرزنش کردی ماخذه کردی گناهی که از من سرزده کمه اگر بدونیم من چقدر گناه دارم چقدر تقصیر به درگاه الهی دارم خیلی اقرار بتخصير بدرقاه الهي وانشيزيك خودشم توسيه کرت بدعاية غنون يونس عليه الصلاة والسلام فقل ما شئت فييا من المخازي وضعفها فقل ما شئت فييا من المخازي وضعفها فإنك قد صدخت فقل ما شئت فييا تقول دار بارد من ازوان اشتباهاتك ميبيني وميدوني مره نسيحتكم فقل ما شئت ازوان قناهانك انجم دادن دا. اشتباهاتك انجم دادن دا من المخازي وظاعفها. فخلي بشرازون فإنك قد صدقت تراسق في تخسيرا بدال جهله زيادة ومهما عبتني فلفرط علمي بباطني بدال بعض النصها بباطنه ودال بعض النص غير كأنك قد مدحت خلون شو زي ك ببعض الناس ذيك ترى ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كانك قد مدحت ومهما عبتني هل تقت از من ابجي بكني اي بس من بتراشي تختم بكني فلفرط علمي نتفرد فرض يعني شدت علمي مال فلفرط علمي بباطنتي وان شدت علمي كب خضم دارن بنفسه خضم بغنواهن خدهم كانك قد مدحت ان كچ عندك غنواهن كي از من ياد كردي در مقابل اون همه غنواهن هم چيزي نيست انگار كه مدحم كردي انگار كه مدحم تو یکی از من ابتراشی میکنی من بیشتر از اون عیبی که تو برام یاد کردی بیشتر از اون گناه مرتکب شدم الله مرا ببخشه این یکی از ابزارها دست ما داره میره ابوسحق البری بر اینکه چگونه نصیحت را هضم بکنیم هضم می‌تونیم این نصیحت را از گلو پایین ببریم و بعد هضمش بکنیم چون نصیحت ها خیلی آسان یا لقمه درشته یا با تبع سلیقه طرف جور نیست سخت که بلع و سخت که هضمش بکنه برای اینکه آسون بشه هضم و بلعیدن اون نصیحت اگر نصیحت شدی داره راهکار نشون میده البیری میگه اگر نصیحت شدی تو نگاه به گناهان بدتر از اون نگاه کن یعنی اگر نقد شدی در یک مسئله تو به سریره خودت نگاه کن که چقدر به درگاه الهی تقصیر داری کوتاهی داری تا به تبعت بر نخوره اون نصیحت اگر کسی نصیحتت کرد بهت گفت مناسب نیامدی برادر بهت بید بابنا که تو کی باشی که به من بگه نماز صبح چرا به من گفت حالا با خود خودخوری میکنی فلانی به من گفت تو مسجد نماز صبح نمیدی انگار که من برای او دارم میام نماز یعنی من خدا رو نمیشناسم مگر فلانه و الی آخر با خودش خودخوری میکنه و کینه و خودت به دل میگه که چرا فلانی به من گفت نماز صبح نمیدی تو مسجد نبودی میگه تنها گناه همین نماز صبح بود که نمیدی بودی یا بدتر از اونم بین خودت و الله تخسیرات و گناهان داری برای هضم این نصیحت نگاه دیگر گناهانت رو تا گلود باز بشه این خط سر خود رو بالا نگیری کم تواضع بخرج بده نگاه پایین کن نگاه خودت کن چون اگر مطلع بشه به عیب خودش سر پایین مندازه نه دماغش بالا ببره میتونه پنپذیر بشه و اونت نصیحت رو سرت چش بذاره و بلکه تشکر بکنه جزاک الله خیر عیب منو بهم هدیه دادی که خودم رو اصلاح بکنم بارک الله فی. دستشو بگیر نجات داد تشکر ازش بگو نصیحتت کرده به جزاک الله خیر. نور نداره. من اینجا آیه میخونم اشتباه میکنم. الله جزای خیر بدون کسی که به من میگه اون آیه نطقم اشتباه بوده. جایی هست برادران الله جزای خیرشون بده. جدا دارم میگم. تذکر میدم میگم شیخ تو سلامات را سری میگی. راست میگم سری میگم جایی میترسم که صحبت از دهنم به فراموش بکنم سریع از صلوات رد میشم اشتباهه. سعیم میکنم تلاش میکنم که اصلاحش بکنم که این را درست بگم. الله علیه و سلم اشتباهی و مقرمه همه بیشتباه چرا به بر بخوره؟ الله جزای خیرش بده و جزای خیرتون بده که یاد آوریم میکنید نباید به طبع ما بر بخوره فلا تردل معایب فهو عار رضایت بعیب عاره رضایت بعیب عاره زشت ننگه هیچ وقت رازی نباشت بعیب عظیمون یورثو المحبوب مقتا عظیمون این چیز خیلی بزرگیه کسی که حیبرا بر خودش بپسنده این زشتی را ننگی را خیلی بزرگ سبب میشه که چی یورث المحبوب مقتصر سبب میشه اون کسی که محبوب مردم دوستش دارن مردم بغضش داشته باشن خودت زش میشی وید گفت نماز صبح نمی‌مدی یک بار نمی‌مدی باز گفتی که الا این چه کار است که منو نصیحت کرده فرداش نمی‌مدی پس فرداش هم نمی‌مدی اگر الان این نصیحتت کرده فردا چشم دل همه مردم میفتی همه میگن دلش خوشه که این سلفیه دلش خوشه که این ادعا داره و اینم من خودم باش دست و پنجه نرم کردم آن. طرف بود تو مدرسه حماسی صحبت می‌کرد شیخ فلانی اینطوری گفته شیخ فلانی اینطوری گفته ابوحساقه حوینی جهاد و من نمی‌دونم حکام نمیدونم. فاسق و فاجر مشروب خار، حرمت علما رو ندارید، قربت علما میکنید، باور بکن همون طلاب، خودم تو مدرسه بودم، نماز صبح میرفتم بیدارشون میکردم بیدار نمیشدم، نماز عصر بیدار نمیشدم، نماز عصر و صبح بیدار نمی، خودم میرفتم بیدارشون میکردم، چیزی که از من نش دادن این طلاب چی بود؟ این جامیه مدخلیه با علما مخالف علما را تخریب میکنه شیخ محمد حسان را تبدیع میکنه شیخ ابو اسحاق الان کی طلب کاره من یا شاید یک بار یک جایی تو درسی اون درس نواقض اسلام بود من بحث چند تاشونو کردم یک سلیمان علوان بود تریفی بود همین یک چند نفری از اینهایی که خیلی حماسی صحبت میکنن و و خیلی برایشون تبلیغات میشه و شیخ و علامه و محدث و فلان میشه اشتباهاتی از اونها یاد کردم در تفسیرشون به آیات الله جل علا مثل فلا و رب کلای يؤمنون ما دیگر آیات الله جل علا در قرآن اومدم اشتباهاتشون رو گفتم من چی گفتم مگه اصلا نگاه نشد به اینکه من چی دارم میگم چی دارم نقد میکنم نگاه به چی شد تو کی باشی که بیای اینها رو نقد بکنی زمانی که ما عسر راشدیم در مسئله اعتقاد اون عیب اعتقادی رو کوچک شمردیم اون بدعت اونجا هست که بهانه میتراشیم در تعامل خودمون با اون بدعت و اون مبتدع آیا رسول الله صلی الله علیه و سلام در مقابله زلخویسری تمیمی نرمش نشون داد یا تند و سخت برخورد کرد جوهری حسن تند رو مشکل نداره همونطور که ابو خیلی البینی میگه اون چیزی که سریره ما هست خیلی بدتر از اینه از اون چیزی که مردم میدونن بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتی که خطاب بذل ذل خویسری تیمی که نقدش میکنه میگه کلب من کلاب اهل النار سقی سگان جهنمیه نرم نه این نرمیه به نظر شما این موقفه تند خشن سخت یا نرم موقفه تند اگر خارج بشن خروج بکنن اینو هم فکرانش والله میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم خودم هم چون قوم عاد سموت گردنشونو میزنم هلاكشون میکنم نابودشون میکنم این چیه این برخورد نرمه برخورد تنده در مقابل چی بدعت تکفیرشو که نکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم تکفیرش کرد مگه دل سره؟ به خاطر فسقش عدم عدالتش عدم قناعتش به شرعی که بر مصطفی نازل شده و حکمی که داره اجرا میکنه عدم قناعتش عدالتش ساقط میشه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این تون باهاش برخورد میکنه بله بدعت فکر بدعی شخص رو میکنه ما که ساقتش نکردیم خودش خودش رو داره میکنه مگه ما اومدیم از اون بالا بندازیمش خودش خودش از اون بالا انداخته زندان شده برای چی؟ تکفیر کرده خروج بر علیه حکام تکفیز کرده دودش چشمکی میره خودش مگه ما زندانش انداختیم مگه ما مقصریم در زندان شدنش وقتی که نقد تلخ بشه اینه نقد را تلخ برادر. that Christian cycles have full والله By having in the conclusions That he had several manifestations Which is if the enemy That has been scarred That an disadvantaged adversary That was a j cen Ed But after selling the temple I think he said If you believe in the intend for the breakthrough He will not say that he is Totally a faithful servielang innocent and all the people جهاد را میگفت که واجبه جلوب خوارج ایستاد خروج بر علیه تجویز نکرد با این وجود که قولش کفری بود این منهج کیه؟ علمای ربانی اهل سنت حالا یک داعیه بیاد خلاف این منهج اهل علممون عمل بکنه بله ما تذکر میدیم یاد میکنیم میگیم این منهج خطاست منهج اهل سنت نیست منهج تکفیری هاست الان میخوان هر نامی داشته باشن بگو سروری بگو حروری میخوای هر نامی براشون بذار خودت منبوز میشی خودت از چش مدل دل میفتی فلا تردل معایب فهو عار الان این عیب و معایب میخواد اعتقادی باشه میخواد فسق و فجور باشه میخواد بدعت باشه فلا تردل معایب فهو عار خودت زش میشی با اون اعتقاد بدت ما اون عمل نادرست حظیم و یورث المحبوب و سبب میشه که مردم از بدشون بیاد سبب میشه که بغضت داشته باشن سبب میشه که مردم بدگویییت بکنن پشت سرت حرف بزنن چرا ما نمیان پشت سر آل حرف بزنیم یا فوزان حرف بزنیم یا عبدالعزیز آل شیخ یا عبدالمحسن عباد یا عبدالرزاق البدر یا سلیمان الرحیلی و یا دیگر علمایی ریش سفیدن چرا نمیان پشت سر اونها حرف بزنیم بیایم خورده بگیریم روی مسائل اعتقادی روشون چون اونها قدر عقیده ال رو حماسی عمل نمیکنن عاطفی عمل نمیکنن اونها وقتی که جهل بیاد این واکنش های جاهلان هست ها شخص سر میزنه برای اینکه توی جوان برحذر باشیم مجبوریم که دارد بدیم راه اهل علم و علما راه احمد محمله میخوای مقایسه بکنی بدونی حق را از باطل من رس میگم یا اون طرفی که دارم نقدش میکنم بیا قول منو عرضه بکن بر قول ائمه اهل سنت محل اختلاف ما با این حرکی ها تو خروج بر علی حکامه با تریفی مسلمان علمانو داره دستشو بیار اعمه قرن اول و دوم و از اعمه اعلام بعد از اون اجماع بعد از این که اشتباهاتی از بعضی رخ داد بیان نمیگم نبوده ولی که توبه کردن کشته شدن بعد از اون اجماع اتفاق نقش شد ابن بطه اکبری در ابانه ابن خوزیمه لالکایی نو ها اعمه اعلام هن اعتقادی کتابای اعتقادی را نوشتن خوزن منده. ما من كتاب نوشتن و اجماع های ائمه نقل على کتاباشو با سند به ادعا کی نیست بیا اون قر رو بکن و يهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته گش زده و تهوي در باز از نسخه و اینجا نوشته من بالوجيه من الثريا شخصی باجیه نام داره شخصیت داره ولی که اون اشتباهه اون غلط او را از ثريا از اون ستاره سریا می میندازه به پایین از بالا و افته و یبدله نسخه شا فکرم تبدله مکان الفوق تحت از اون مکان عالی در دلها و قلبها اون جایگاه اون منزلت اون شخصیتی که داشت از اون چشم دل میفته به جای اینکه که اون عزتش خفز بشه کرامتش خفز بشه چی میشه از چشم دل میفته نامی از اونها هم به جا ابو بکر ابوبکر بغدادی یک روزی تو رسانه ها می شنینیم ده سال قبل و داعش مدتی است که سرسداشون نیست نه آوازشون نیست از چش دل از همه چیز افتادن کجا رفتن؟ چی شدن؟ عاقبت بدعت عاقبت رضایت به بدعت رضایت به عیب و یبدل و مکن الفوق تحت به جایی بالا باشه شخص بالا سر منبر باشه زیر منبر میشه مردم لگت مالش میکنن کنن از مردم میفته. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريبه وان بعدت والبا زي كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريبه وان بعدت كما الطاعات تبدلك الدراري تبدلك دراري اگر بر روی طاعات مواظبت داشته باشی به جای اینکه جا و جایگاهت روی زمین باشه بر روی ستاره میشه طاعات تو را سر بلند میکنه عبادت و علم تو را سر میکنه جوت روی ستاره ها میشه اون ستارهان درخشان آسمان همچون مرواریدی که میدرخشند در کما طاعت تبدلك و بيدار اون چیزی که در بعض نسخه ها اومده کما طاعت تنعلك الدراري نعلت نعلت چی در و مروارید ها میشه حتی نعلت خلف اون وجه اولی جالب تره تبدلك دراری و تجعلك القریبه قریبه بعدتها هر چن که دور باشی هر که بمیر از ولی به دل مردم دوستی و نزدیک و عزیز عبدالماسان عبما تو مدینه هست ولی جاش تو قلب ما دوستش دارید آلبانی مرده زیر خاکه ولی جاش جایگاهش تو قلب ماست عزیز عزیزه دل ما نصیحتمون که چطور روی چشمده رو سر نذاریمش عزیز ده باشه به دل ما داریم که بهاش حش بشیم روز قیامت چرا حش نشیم چرا آرزو نداشته باشیم كزي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعي مكني وسنگش رو بسینه میزنه و سانکه سنتش چطور دست خدا نخواهیم که باش حش بشیم روز قیامت الله ما رو با اونها وعد نبیون الصدیقین و شهدا حش بکنه 93مین بیت از ابیات تائیه البری رحمه الله واسكنه فسيح جناته وتنشر عنك في الدنيا جميله وتلقى البر فيها حيث شئت وباذي از نسخها وتلقى البر فيها حيث شئت وتنشر عنك في الدنيا ف الدنیا طاعات و عبادتها سبب میشه که یاد و نام نیکی از تو بر سر زبانها بیفته به خوبی ازت یاد بشه و تن شروعن که ف الدنیا جمیلا یعنی اون علم سبب میشه به خوبی ازت یاد بشه و تل قل بره فیها و طاعات و عبادت خوبی ببینی همسر خوبی فرزندان وتلقى البر فيها حيث شئت هاجو بر خوبي بيمنين مردم بات خوبي ميكن احترامت ميكن علم طاعته عبادته جزاء من جنس العمل خوبي كردي خوبي ميبینی بدي كردي بدي ميبینی اين پاداشه طاعت و عبادت خصوصا پاداشه وقت گذاشتن براي علم سر ميشه تو ارزشمند بشي سر ميشه كه تو قيمت داشته باشي بها داشته باشي وطن شرعا انكف الدنيا جميله وتلقى البر ونجا گفتی ملبر خوبی البرا آدم خوب هر جا بری الله برات یه خوبی رو مسخر میکنه مثل خودت پیدا میکنی آدم خوبی پیدا میشه برات یک انسان خوبی پیدا میشه برات وقت احساس تنهایی نمیکنی همونطور که ما اینجا میایم احساس تنهایی نمیگنی فکر میکنی میون خودمون قبیله و خیش خودمونیم کی میتونه اینجا داد بکنه که غریبه کسی غریب هست اینجا کسی غریب نیست این فایده چیه فایده علم ثمره علم ارزش دادن و بها گذاشتن برای علم ارزش علم علم و اجتهاد برای کسب علم حالا چی میخواد مسافرت باشه چی میخواد بها گذاشتن باشه کسی دنیا رو به پشت سر خودش رها بکنه به واسطه علم و دین بدون شک الله جل و علا او را اورن خواهد داد همونطور که قبلا من بحث موسی رو کردم و نوح رو کردم ابراهیم رو کردم و الی آخر از پیغمبران که مثال بود الله حد با به میگه و من مهاجر فی سبيل الله ومن يهاجر هرکسی این آیه تا روز قیامت است فقط برای کسانی نیست که هجرت کردند از مکه و من مهاجر فی سبیل الله هرکسی باشه هجرت بکنه هجرتش برای الله باشه والا بخواد برای تعلیم دین یا برای اعلای کلمه توحید و الی آخر یا بخاطر نجات خودش از گناه و معصیت و بدعت برای حفظ دینش و فرزندانش ومن يهاجر في سبيل الله یجد فی الارض مراغما كثيرا وسعه بعد هم الهی همونطور که نوح بعد می داد یورسد السماء علیکم دین امنیت میاره، دین روزی میاره، دین دنیام میاره. الله دنیا را بهترافت و سوق میده، اسبابش را براد فراهم میکنه. یه جد فی الأرض مراغماً کثیره. یعنی چی مراغماً؟ ای تأتیه دنیا رغماً عن آن فیها. دنیا بینش الله میکه با خاک میمالیم و میکشیم بهترافت ای مؤمن. یه جد فی الأرض مراغماً کثیره و سعه و جوشایش. این چیه؟ قدم گذشتن در راه الله و من یهاجر فی سبيل الله. بعدی یلهیه بعدی هم که پیامبران گفتم دادم به قومشون در مقابل دین دارید و طاعتت عبادتت بدان که الله غیر از این که تو را نسرت میده الله دنیا هم بهت میده که در سوره تلاق الله در مقابل این تلاقی که به ظاهر بده ولی اگر تقوی توش بیاد وعده ها و, و مجده ها گذاشته بطور عام نه فقط برای تلاقا الله جل و علا میگید و من یتق الله یجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب اوليش اولين بعده ومن يتق الله هك استخوي الله داشوش ميخاط طلاق ميخاط تجارت ميخاط طلب علم تخوي الله رو داشته باشي مثل موسى عليه السلام قدم برداري براي طلب علم وقتت بذاري جهد و تلاش داشته باشي جديت داشته باشي به الله به خاطر رو سفيدي كه روز قيامت درو الله رو سفيد بيسي ومن يتق لها يجعل له مخرجا قدم برداشتي الله راحتن برات آسان ميکنه اوليش یج الله مخرجا میخوای خوی درس طلب علم داشته باشی تاجری کاسبی اگر نیتت صالح باشه وقت بگذاری نه که بهونه بتراشی alat دستک تنهام تو مغازم کسی نیست یا همسرم ازیتم میکنه یا برادرم به جونم افتاده بانا رو بزن کنار بهانه را زدید کنار رفتی جلو کتاب گرفتی بگو فردا کتاب دو دواب ابن قیم میخونم غافلت لهوان ابن قیم میخوندم. و کتاب زیاده از یک جای شروع بکنی برای طلب علم تحصیل علم با قواعد فقهی بخونی اصول فقه بخونی صرف و نحو بخونی فرقی نمی کنه نگو کلم نمی کشه مخم نمی هدفت فهم کلام الله با صرف و الله درش رو برات میگشایه و الله یجعل له مخرجا می خواد قران رو حفظ بکنی تو الله رو داشته الله درشو برات باز میکنه ویرزقو من هیثو لا یحتسب از جایی که فکرش نمیکرد الله روزیش میده حالا میخواد حبس باشه حالا میخواد علم باشه الله میخواد مال دنیا باشه ویرزقو من هیثو لا یحتسب از جایی که دماون نمیکرد حرکت گفتم میخواد جدیت میخواد نه مجردش شعار توقع داشته باشید بشینی در آسمان براتون باز بشه نه باید حرکت بکنید مثل موسی علیه و السلام جلوت درس میگه و من یتق الله یجعل له من امره يسره. تقوى الله را داشته باشی هر امری داشته باشی الله برات چیکار میکنه آسان میکنه برا سخت حفظ کردنش و من یتق الله یجعل له من امره یسرا وعسرا سخت سختیس آسان جلوتر از اون باز دوباره میگه و من یتق الله یکفر عنه سیئات و یعظم له اجره قدم برداشتی اولین مطلب یجعل له مخرجة دوء مثلا يرزقه من حيث لا يحتسب سبومي يجعل له من أمره يسرا وبعد چارومي يكفر عنه سيئاته بنوانة من الله بخش ويعظم له أجر وفاداشة بسياري هم بيت ميده بعد أزوان دوباره ميقول هماش سورة تلوخه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى أولا ساخت هم بقرش ساخت بل إن گرفتی بقیاش آسن یا سخته فا اخذها برکه، براکته براد مثل آب و میشه. بیشه چندو میبود شیشومی لا یکلف الله نفس إلا وسه الله تکلیف نکرده الا در حد وسط و بدون خوصا در حفظ قرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الماهر بالقرآن ایلی حافظ قرآن جمهور و کسی که مهارت داره حافظ قرآنه باکیه با بهترین فرشتگان الهی در بشت چیه پا داش الله فوق طاقتت ازت نخواسه تو میتونی اون جایگاه برسی هفتمی و من يؤمن بالله ويعمل الصالحات يدخله جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقه هو اول روزی دنیا بود اخرش رسید الله جل جلاله روزیجی اخرت جای اون متقی جای اون کسی که استقامت میکنه بر طاعت و عبادت و راضیه به مقدرات الهی جاش کجاست بهشت الهی بهشت برین یودخلو جنات تجری من تحتها الانها اون بهشتی که در شرودها جاری است خالدین فیها ابدا راستگارن در اون بهشت قد احسن الله رزقا الله چه خوب پاداشه چه خوب روزی میده وتمشي في مناكيبها عزيزه وتمشي في مناكيبها كريمه وتجني الحمد فيما ودار نسي مما قد غرسته وتمشي في مناكيبها هر جای زمین بخیبری کریمی معززی مکرمی بمقابل ان طاعت و عبادت التقوات وتجني الحمد فيما قد غرسته وتجني الحمد عاقبته حمید میشه ازت به خوبی یاد در مقابل اون چیزی که کاشتی غرسيك و عبادتك انجام دادي چه دار دنیا چه آخرات بارك الله فيكم ورفع الله قدركم وغفر الله ذنبكم سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمدك وصلى صل على محمد و على محمد